بابا دستش را در برابر تابش آفتاب سایبان طرف راست صورتش کرد و گفت تو که گفتی دیگه فرار نمی ما ما حرفامونو زدیم اون وقت تو در اومدی گفتی که دیگه فرار نمی کنی. به من قول دادی لاینل جوابی داد که بابا نشنید بابا گفت چی؟ من قول ندادم چرا قول دادی؟ درست و حسابی قول دادی لاینل گرداندن سکان را از سر گرفت و گفت اگه راست میگی و دریا سالاری پس کو افغانت ببا گفت ناوگان من خوب شد که اینو پرسیدی. و خودش رو به درون قایق لغزاند لاینل با تحکم گفت نه یا تو و بیان که کار را به جیغ و داد بکشاند با سر زیر انداخته گفت هیچکس کس حق نداره پاشا اینجا بزاره. بابو که دیگر پایش با دماغه قایق تماس پیدا کرده بود گفت کسی حق نداره؟ و از روی اطاعت خودش رو بالا کشید. روی بارنداز رفت و گفت هیچ کس حق نداره؟ باز چهارزانو نشست و گفت چرا؟ جواب لاینل کامل بود. اما این بار هم چندان بلند گفته نشد. بوبو گفت چی؟ برای اینکه کسی اجازه نداره. بابا که به پسر چشم دوخته بود، یک دقیقه تمام حرفی نزد. دست آخر گفت از شنیدن این حرف متاسفم. راستش خیلی دلم میخواد بیام توی قایق تو. دلم خیلی برات تنگ شده. جات همیشه پیش من خالیه. از صبح تا حالا تو خونه تنها بودم و کسی نبود باش حرف بزنه. لاینل اهرام سکان را حرکت نداد. سرگرم وارسی رگعی شد که بر چوب دسته آن به میخورد. گفت. میتونی با ساندرا حرف بزنی؟ بابو گفت ساندرا کار داره تازه دلم نمیخواد با ساندرا حرف بزنم میخوام با تو حرف بزنم دلم میخواد بیام تو قایق تو با액 حرف بزنم از همونجا میتونی حرف بزنی چی؟ از همونجا میتونی حرف بزنی نه نمیتونم فاصلش خیلی زیاده باید بیام نزدیکتر لاینل اهرام ساکان را گرداند و گفت کسی حق نداره پاشا اینجا بذاره. چی؟ کسی حق نداره پاشا اینجا بذاره. بابا گفت. باشه. اما از همونجا میشه بگی چرا فرار میکنی؟ اون هم بعد از قولی که به من دادی؟ یک عینک قواسی روی عرشه نزدیک نیمکت عقب قایق افتاده بود. لاینل به جای جواب بند چرمی آن را با شست و انگشت دوم پایش گرفت و با حرکتی سری و کوتاه به آب انداخت. اینک بیدرنگ در آب فرو رفت. بابا گفت، عالی بود، حساب شده بود، اینک امووه بود اگه بشنوه خیلی هز میکنه و پاک محکمی به سیگار زد. یه وقت مال عموسی مرت بود، مال هر کی میخواد باشه. بابا گفت، معلومه، معلومه برات مهم نیست. سیگار میان انگشتایش کاملا خم شده بود و دیگر چیزی نمانده بود که آتش به شیارهای بند انگشتش برسد ناگهان گرمی را حس کرد سیگار را رها کرد تا بر سطح دریاچه بیفتد سپس از یکی از جیب‌های شلوارش چیزی بیرون آورد ای بود به اندازه یک دست ورق بازی که لای کاغذ سفیدی پیچیده شده بود و نوار سبز رنگی دورش بود گفت این یه جاکی‌لیدیه و حس کرد که نگاه لاینل به او دوخته شده است درست مثل چاکلیدی باباست اما کلیداش از مال بابا خیلی بیشتره ده تا کلید داره لاینل اهرام سکان را رها کرد از روی نیمکتی که نشسته بود به جلو خم شد دستش را دراز کرد و گفت بندازش خواهش میکنم کنم آفتاب من بذار یه دقیقه سر جاهامون نشسته باشیم میخوام یه ذره فکر کنم این زنجیر رو باید بندازم توی آب لاینل با دهان باز به او خیره شده بود دهانش را بست و گفت مال منه و مثل اینکه پی برده باشد که حرف بی جایی زده است صدایش از اوج افتاد ببو که سرش را زیر انداخته بود به او نگاه کرد شانه بالا انداخت و گفت ماله هرکی میخواد باشه لاینل که مادرش را نگاه میکرد به آرامی دوباره روی سندلیش نشست و دستش را به پشت راست کرد تا اهرم سکان را بگیرد همانطور که مادرش انتظار داشت برق آگاهی توی چشمایش میدرخشید. بابا بسته را به طرفش پرتاب کرد و گفت بگیر بسته از پهلو روی زانوهایش افتاد پسر بسته روی زانوهایش را نگاه کرد آن را برداشت و نگاهش کرد و از پهلو توی دریا چنداخت و بیدرنگ سرش را بالا کرد و چشم بابا دوخت در چشمهایش مقاومتی خوانده نمیشد بلکه از عشق پر شده بود لحظه بعد دهانش جمع شد از شکل افتاد و بلند زیر گریه زد بابا با احتیاط مثل کسی که پایش خواب رفته باشد ایستاد و خودش را به درون قایق لغزاندند. لحظه بعد روی نیمکت عقب نشسته بود. سکاندار قایق را روی دامنش نشانده بود و تکانش میداد. پشت گردنش را میبوسید و اطلاعاتی به او میداد. ملوان ها گریه نمیکنند بچه؟ منوان ها هیچ وقت گریه نمیکنند. فقط وقتی که کشتشون غرق بشه یا وقتی که بشکن و رو تخت پارههاش دراز کشیده باشن و چیزی نداشته باشن بخورن مگه؟ ساندرا به خانم اسنل گفت بابا بادبادک گنده بیمسرفه بابا آشکارا لرزید اما پسرک را رو از روی دامنش بلند کرد و جلوی خود روی کف قایق قرار داد و موهایش را رو از روی پیشانیش زد و گفت که این حرف و زد ها؟ لاینل با اشاره سر تایید کرد و گریه کنان پیش رفت و میان پاهای مادرش ایستاد. بابا که او را میان دستها و پاهایش گرفته بود گفت اینکه حرف خیلی بدی نیست. من فکر می کردم اتفاق خیلی بدی افتاده. و لاله یه گوش پسرک را به آرامی گاز گرفت. کوچولوی من. میدونی باد بادک چیه؟ لاینل یا دلش نمیخواست یا نمی به آن زودی بلند حرف بزند. درنگ کرد تا حق حق فرو نشست سپس جواب مادرش را داد مثل کسی که جلوی دهانش را گرفته باشند اما به روشنی در گرمای گردن مادرش به نشوا گفت یکی از اون چیزاییه که تو هوا بالا میره که آدم نخش و دست میگیره بابا که میخواست پسرش را بهتر ببیند او را کمی عقب برد سپس دستش را از پشت توی شلوارش فرو کرد و او را از جا پراند اما بیدرنگ را بیرون کشید و پیراهنش رو توی شلوار مرتب کرد گفت میخوای بهت بگم الان چیکار میکنیم با ماشین میریم شهر و خیارشور میخریم نون میخریم تو ماشین خیارشورها رو میخوریم بعد میریم ایستگاه قطار بابا رو سوار میکنیم میاریمش خونه بهش میگیم ما رو با قایق ببره بگردونه. بعد تو کمکش میکنی بادبانها رو پایین بیاره باشه لاینر گفت باشه آنها قدم زنان به خانه برنگشتند با هم مسابقه دو گذاشتند لاینل برنده شد